بسرعه من حديث صدني فهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مكفر مؤمن مكفر مكفر من تكفير مشرز پاک مشرز گنہان از گناهانش از اشتباهاتش با هایی که در دنیا می‌بینه ما مکفرات زیاد داریم اون چیزایی که سبب کفاره گناهان ما میشه خداوند در قرآن می‌فرماید انتشتن بو کبایر اما تون هون عنه نکفر عنکم سیاتکم اگر از کبائر دوری ببرزید گناهان صغیرتون رو میبخشیم گناهان کبیر زیادن از جمله غیبت نمامی توهمت زنا نگانه محرم کردن کوتا کردن ریش از قبضه به بالاتر ما اسفل التعبین فی النار و یوبیران رو از... که بلند بشه از خوزکه پاپا بیاد که در آتش جهنم رسول الله صلی الله و که بعد حجاب موش بیرون میشه ساق دستش بیرون میشه اینا گناهان کبیره و بیش از اینه که توصیه میکنم حتما کتاب الکبار امام ذهبی رو دوستا حتما مطالعه بکنه تا در این گناهان کبیره نب... نیفتن تا گناهانشون کفاره بشه خیلی مکفرات داریم از رحمت الله به بندگان مؤمنش خصوصا این ارزش ایمان مؤمنه که این مکفرات الله براش بذاشته رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بیفرمه صلاوات الخمس مکفرات لما نماز نمازهای فرض پنجگانه مکفرات لما بینه. یعنی ما بین اون نمازها کفاره میشه نمازی به وزو میگیری میری قطرات آبت که روی زمین میفته با اون گناهان اتفاق میشه قدم بر میداری از مسجد بر اون قدم برگشتتن برات حساب میشه و کفاره گناهانت میشه نشستن در مسجد فرشتگان برات دعا میکنن اینها ها مکفراته رمزان تا رمزان مکفراته حج تا حج عمره تا عمره نماز و ضحا خوندن توصیه میکنم حتما دوستو و اون نماز چار رکعت خصوصا توصیه میکنم که رسول صلی اللہ علیه سلم که میفرماین که کسی که مواظبت داشته باشه بر نماز 4 رکعت نماز ضحا کفتا کفایتش میشه کفایتش میشه از باب کفاره گناهان از باب این که درهای خیر و روزی براش باز بشه خیلی از مسائل هست غیر از پاداش هایی که الله گذاشته در همین نماز ضحا مثلا برای تک تک اون مفصل ها و اون جاهایی که غزروف واقع شدن مفصلن از استخوان بدن بدنه به هم وصل شده بیش از 360 مفصل داریم که برای تک تک آنها الله کفارات گذاشته از این نماز، از رکوع، و جدش و تسبیحاتش کفارات زیاده و این نشانه لطف پروردگار یک تا به ایمان و به مؤمنینه با خاطر ایمانی که به الله متعال دارن. پس ارزش این ایمانمون بدونیم. ایمانمون سفت و محکم بگیریم، عضو علیها بالناو جسخت ایمانمون بچسبیم، با دندان‌های آسیاب دینمون رو، اسلاممون رو سفت و محکم بگیریم، پافشاری بکنیم بر سنت تا اینکه پاک به درگاه الهی بریم و تمامی تمامی گناهانمو الله متعال بیامرزه گفتم کفرات زیاده بر والدین و خوبی و احسان و صدق دادن و لبخند در صورت مومن و ما بقیه چیزهایی که همه میدونید و سعی کنیم رو درست نگه داریم و سفت و سخت بر اسلاممون استقامت بورزیم